بیان آنکه کشتن و زهر دادن مرد زرگر به اشارت الهی بود نه به هوای نفس و تعمل فاسد کشتن آن مرد بر دست حکیم نی پی امید بود و نی زبیم او نکشتش از برای تبع شاه تا نیامد امرو الهام الاخ آن پسر را کش خزر ببرید حلق سر آن را در نیابت عام خلق آنکه از حق یابد و وحی و جواب هرچه فرمایت بود عین سواب آنکه جان بخشد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 فره آنگه کشند که به دست خیش خوبانشان کشند شاه آن خون از پی شهوت نکرد تو رها کن بدگمانی و نبرد تو گمان بردی که کرد آلودگی در صفاقش کی هلت پالودگی بحران است این ریاضت وین جفا تا برارت کوره از نقره جفا بحران است امتحان نیک و بد تا بجوشد بر سرارت زر زبد گر نبودی کارش الهام اله او سگی بودی دراننده نشاخ پاک بود از شهوت و هر و هوا نیک کردو، لیک نیک بدنما، گر خزر در بحر کشتی را شکست، صد درستی در شکست خزر هست، وهم موسا با همه نور و هنر شد از آن محجوب، تو بیپر مپر، آن گل سرخ است. تو خونش مخان، مست عقل استو، تو مجنونش مخان، گر بودی خون مسلمان کام او، کافرم گر بردمی من نام او، می بلرزد عرش از متح شقی، بد بدگمان گردد زمتش متقی، شاه بود و شاه بس آگاه بود، خاص بود و خاصه الله بود، آن کسی را کش چون این شاهی کشد، سوگ بخت و بهترین جاهی کشد، گر ندیدی سود او در قهر او کی شدی آن لطف مطلق، قهر جو بچه می لرزد از آن نیش حجام مادر مشفق در آن شاد کام نیم جان بستاند و صد جان دهد آن چه در وحمت نیاید آن دهد تو قیاب از می میگیری دور دور افتاده ای بنگر تو